خوزاره عزیز و برادران و خواهران گرامی، مطلبی که امروز میخواهم درباره آن با شما مذاکره بکنم، بسیار مهمه و حیاتی و در واقع یکی از حیاتی ترین نکاتی است که زندگی ما به آن وابسته هست. و به یک تعبیر دیگر اگر زندگی سالم و درست و سعادتمندی را خواهانیم بایستی به این نقطه که امروز در جمع شما عنوان می شود به دقت گوش بدید هم سعادت ما در انجام این دستورات الهی است و هم خدای نخواسته عدم انجام آنها این تعبیر را من به کار ببرم بهتره باعث میشه که زندگی ما را الله تعالی با مشکلاتی مواجه کنه. هم دنیا زرر بکنیم خسرت دنیا والآخر خسارت دنیا و آخرت را برای ما در پی داره اگرچن آنچه با آنچه که خدا دستور داده ما انجام ندیم طاعت خدا فرم برداری الله را در این زمین اگر نکنیم این را بدانید و بدون شک انسان به هلاکت میفته و آن کدام مسئله است؟ مسئله حلال و حرام ما است که ما در زندگی بدانیم چه چیز را الله زلجلال برای ما حلال کرده ما اون را انجامش بدیم و چه چیزهایی را من فرموده حرام ساخته ما گرد آنها حتی نبایستی بچرفیم امروز زندگی ما اگر زندگی جامعه رو منظورم هست اینی که هر روز شکوه هر روز گلایه هر روز مشکلاتی مختلف متاسفانه ما با آنها مواجه میشویم علتش اینه که ریشه اعمال ما ریشه اعمالمان را نمی دانیم از کجا نشأت میگیره این مشکلات از کجا شروع شده که امروز آمده امروز یک مشکل عظیم و بزرگ تبدیل شده هر چه چاره میکنیم هر چه فکر بیریزیم روش هر چه دنبال راه حل میگردیم راه حلی براش پیدا نمیکنیم این بر میگرده به ریشه اعمال و یکی از ریشه ترین ریشه دارترین ما این بحث حلال و حرام ما است حالا در ادامه در خدمت شما عرض خواهم کرد که این چقدر شعب مختلفی داره چقدر شاخ و برگ بزرگی داره این حلال و حرام شاید در لفظ دو تا کلمه باشن یکی حلال یکی حرام بس دو تا. اما وقتی اینها را انسان بررسی میکنه کتابهایی که در این باره نوشته شده سبحان الله چقدر کتابه اینها را انسان مطالعه بکنه بخونه ببینه سبحان الله این چه دایره وزیر و بزرگیه قرآن عظیم و بزرگترین سند و مدرک است برای ما ما مسلمان ها کاری با دیگران نداریم هر کسی مسلمانه باید که حرف قرآن را قبول بکنه اگر مسلمانه و این قرآن برای ما همه چیز رو مشخص کرده هم حلال ما رو هم حرام ما رو امکان نداره شما در قرآن در باب مساله بگردید شما جوابش رو نیابید این قرآن شریف کتاب جامع و کاملی است من ابتدا در اول صحبتم از قرآن مجید برای شما آیهی خواندم. در ادامه هم همینطور ابتدا من این رو عرض بکنم خدمت شما که شاید کسی سوال بکنه اصلا خود حلال یعنی چی؟ و حرام یعنی چی؟ یعنی تعریف اینا چیه؟ به صورت آمل فهم که همه مردم بدونن خود حلال یعنی چی؟ حرام یعنی چی؟ چه چی چیزی رو حلال میگویند و چه چی چیزی رو حرام میگن؟ این تعریفش چیه؟ در کتابها این هر دو تا تعریف شده خواهش میکنم گوش مفیده برای همه ما و شما تعریف و حلال رو اینطور بیان کردن حلال آن است که انجام است موجبات رضایت خداوند رو در پیداره حلال آن است که انجام دادنش توسط پروردگار اجازه داده شده و نتیجهش کشودی خداونده این یک تعریف جامع و کامل برای حلاله. حالا حلال میخواد خوراکی باشه، حلال میخواد رفتار باشه، حلال میخواد گفتار باشه، هر چی که باشه. مجموع حلال رو این شکلی تعریف کرد تعریف‌های های مختلفی اما جامعه ترینش این تعریف کردن حلال عبارت است از انجام دادن آن چرا که اولا خداوند دستورش رو داده این رو انجام بدید و در انتها نتیجه چیه خداوند راضی میشه این شو تعریف حلال حرام چیه می‌فرماید عبارت است از آن امری که خداوند دستور داده، ما... یعنی دستور داده معنش رو نه فرمود خداوند گفته که فلان کار رو شما نباییسی انجام بدید و به انجام ندادنش هم خدا راضی میشه و خدای خواسته اگر کسی اون رو انجام بده خدا رو ناراضی کرده خداوند رو عصبانی کرده و خداوند این انسانی که دستور خدا رو به زمین بزنه صد در صد در آخرت عقوبتش می کنه و چه وسا بعضی از ها رو در همین دنیا هم عقوبت میکنه. بعضی ها رو مهلت میده برای آخرت اما بعضی رو در همین روی زمین تو وقتی که در زمانی که طرف هنوز ننده از عقوبتش میکنه. پس معنی جامع و کامل برای حلال و حرام رو شنیدیم. خب قرآن مجید عرض کردم بزرگترین دلیل و مدرک برای ماست. همه این مثاله ها را هم در قرآن آورده خدابند اینا رو را هم تا جایی که وقت اجازه بده خود این مقوله حلال و حرام رو علما در چهار فصل بیان کردند در چهار فصل هر یک از این فصله ها اصلا شعبات مختلفی داره که اینها قطعا در یک جلسه چهر دقیقه پنجه دقیقه امکانش، امکان بیان اینها نیست و من هم قناه دارم تا زمانی که وقت اجازه بده حالا در جلسه اولیت جلساتی بعدی من تمامی شعبات بپردازم ولو شده به عنوان تیتروار که شماها بدانید حلال و حرام چه دایره وسیع دارد و ماها بعضی وقتها از اون غافلی پس ارز کردم این حلال و حرام رو در چهار بخش علماء بیان کرده چهار بخشش چیه؟ یک اولین بخش و اولین فصل که عنوان کردن اصول و قوانین اسلام در رابطه با حلال و حرام یک اولین فصل از چهار فصل ها اولین فصل اصول و قوانین اسلام در حلال و حرام اسلام چی میگه؟ چه دستوری میده؟ اصول اسلام به ما چه امر کرده؟ یک اولین فصل دومی فصل چیه؟ دومی فصل آنچه که در زندگی یک مسلمان حلال یا حرام این رو باعث بدانه ای دو سومی فصله حلال و حرام در ازدواج و روابط خانوادگی ای سه و چهارمین و آخرین فصل از فصله های چهارگانه که بیان کردن برادر عزیز من مشتمل بر اقاید آداب و سنن و معاملات و معاشرات که پیانبر اکرام سالسلام به ما چه دستور داره عقیده ما در رابطه با حلال و حرام بر چه مبنایی استوار باشه این چهار فصله اما فصل اولش رو که من امیدوارم خدا من اجازه بده وقتم فرصت بده این رو من در جمع شما عنوان بکنم فصل اول که ارز کردم که اصولی که استلام در رابطه با حلال و حرام برای ما تبیین کرده یازده تا بخش داره یازده تا شعبه داره که فقط من حد سمینه که من امروز شاید به یکی یا دو تا از دوینا بتونم بپردازم خب پس عرض کردم چهار تا فصل شد هر یک از این فصلها ها شعب مختلیفی داره فقط اولین فصل یازده شعبه داره اولین شعبه از اولین فصل که در خدمت شما من عرض بکنم اولین شوبش اینه که اصل در عشقی بر پایه حلال بودن اونهاست یعنی ابتدا خداوند هیچ چیزی رو حرام نساخته در ادامه راه اینا رو حرام ساخته بعضی از چیزها رو حالا مثال میزنم تا بیشتر ذهن شما به ذهنتون بشینه پس میفرماید اولین شعبه از اصول اسلام بر پایه حلال و حرام اینه که همه چیزها حلالند به چه مدرکی به چه دلیلی به قرآن مراجعه میکنی قرآن چی میگه؟ یعنی خداوند چی میفرماید؟ خداوند متعال میفرماد در سوره بقره که اصل در اشیا بر حلال بودن هست خداوند اینطور هو فرماید هو هواللوی. هواللوی خلق لكم ما فی الارم جمیعا خداوند میگه من ارزاتی هستم که هرچی بر روی زمین هست برای شما حلال خلق کردم برای استفاده شما خلق کردم که شما انسان بتونی از اینا استفاده بکنی. پس خداوند است که تمام موجودات روی زمین را برای استفاده انسان و آدمیزاد خلق کرده یک یک ای, ای اولی مثال دو خداوند چی میفرماد؟ در سوره جاثیه میفرماید و ما فی السماوات و ماف الارض جميعا منه خدا میگه خداوند تمام آن را که در آسمانها و زمین است برای شما انسان ها رام ساخته تا شما بتوانید از اینها بهره برداری بکنید از اینها استفاده بکنید برای شما انسان ها ابر و باد و خورشید و فلک همه در کارن تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری خدا میگه اینا همه رو من برای تو خلق کردم ای انسان ای آدمیزاد برای بقیه مخلوقات کنین بقیه مخلوقات رو خدا میگه اصلا من رام شما ساختم تحت امر شما ساختم خب این دومین دلیل ما که خداوند میفرماید و سخر لکم سخر کلمه سخر به معنی رام ساخت اما اینجا معنی اینه که برای استفاده شما مهیا ساخت و سخ خرالکم مافیست مآواتی و مافیلر هر که در آسمان ها هست و هر که در زمینه الله متعهد باید اینها رو برای شما خلق کردم ای انسان، ای آدم ایزد آ... آیه بعدی رو که خداوند از طریق لقمانه اینا همه رو تو کتاب در آوردم از قرآن مزیح الله شیبی فرماد در آیه سوم آلم ترو آن الله سخر لكم ما فی السماوات و ما فی الأرض و اسبق عليكم نعمه چاهرتا و باطل الله اینها تمام این آيات قرآن دريای مانين دریای مفهوم معاني دارن اين جا خدا می خداوند چی میفرماید فرماير خداوند می فرماید. بگو بگو ای پيام بر من ای حضرت محمد همه بگی سلام الله علي و سلام ای پيام بر عزيز من ای حبيب من بگو به این مردم چه بگو؟ این مطلب رو بگو که خداوند آیا شما ها اینسان ها نمی که خداوند آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین است اینها را به خاطر استفاده شما خدا درست کرده اینها رو خداوند برای استفاده شما درست کرده چه اون نعمت هایی که ظاهری هستند چه اونهای که باطنی هستن شما نمیبینید برکتی که خداوند در رنک داخل میکنه ما که نمیبینی این هم یک نوع رحمتی هم یک من نعمت از نیمت های خداونده که به چشم دیده نمیشه. پس خداوند میفرماده پیان من بگو بیم مردم که نیمت هایی که تو آسمان و زمین هست اینها همه رو من خداوند برای تو بشر خل کردن. نیمت هایی که شما میبینید ظاهری هست واده و عاشکارن شما با چشم سر اون رو مشاهده میکنید و بعضی از نمت ها شما اصلا نمیبینید الله ججللا این نکات رو درقرآن از بیماشن به ما یادآوری میکنه. اما بیان میخواد ببینیم خود پیامبر هم به ما چه لذت دویده، خود پیامبر اکرم، صلی الله علیه وسلم در این باب حدیث اولی که در خدمت شما عرض میکنه پیامبر اینطور میفرماید. اولا که آیه اول رو هم برایتون ترجمه نکردم، الله از جلال که میفرماید یا ایجوهاللین آمنو، ای کسانی که شما مؤمن هستید قطعا شما که اینجا انجازش شدید مؤمنی، اگر مؤمن نبودید که در خانه خدا جمله میشدیم، پس این خطاب به من شما. ای مومنان بعضی مفسرین میگن هر کجا گوش بده هر کجا خداوند میگه یا ایوهالدین آمنو خداوند با خطاب بسیار مهربانی منطور خطاب میکنه یعنی با رح، رحیمی ترین حالت خداوند یعنی مهربان، مهربانی ترین حالت خداوند دوست داشتنی ترین حالت خداوند با ما تو صحبت میکنه میگه یا ای الذین آمنو ای کسانی که شما ایمان آوردید ای عزیزان من ای دوست داشتنی ترین انسان های من خداوند منو تو رو خطاب میکنه یا ای الذین آمنو ای کسانی که شما ایمان آوردید لا تحرموا طیبات ما حل الله لكم خراب نکنید اون چیزهایی که خداوند براتون حلال کرده هرچی رو که خداوند حلال کرده شما حلال بدانید اونا رو حرام نکنید بعضی مردم وقتی اصابانی میشن عادت دارن میگه من فلان, فلان چیز برای من حرام باشه اصلا میگه به تعبیر ساده من و شما محلی من و شما میگه ما آب خونه فلانی رو حرام، حرامش کردیم خب چرا آبی که اینقدر زلال شفافه برای رفع تشنگی من و تو هست؟ و خداوند میگه من آب رو مایه حیات برای شما انسان قرار دادم ما بیام حرامش بکنیم؟ میگه آب منزل فلانی رو ما حرامش کردم که چه هر کشتی بخوای حلال خدا رو حرام بکنیم؟ خداوند دستور میده ای شما اجازه ندارید حق ندارید اون چی که من حلال کردم شما حرامش بکنیم لا تو حرمو طیبات ما لكم. شما حرام نکنید آن که خداوند برای شما حلال قرار داده ولا تعتدو از حد هم نگذارید از حد و مرزی که خدا مشخص کرده پارو فراتر نگذارید چرا؟ چون خداوند میخوامد اینالله الله لا حق المعتدین خداوند کسانی رو که از حد تجاوز بکنه خدا دوست نداره کی؟ کی هست از ما که بیاد مدعی میشه که خداینا خواست ما الله من کاری میکنم خدا رو دوست نداشته باشه هیچ کسی فکر نکنم باشه اگر کسی امو در کللش باشه این حرف رو نمیزنه همه ما دوست داریم که خدا ما رو دوست داشته باشه چون ما خدا رو دوست داریم و توقع داریم خدا ما رو هم دوست داشته باشه خب خدا من میفرماد یکی از راه هایی که من توی بنده رو دوست خواهم داشت اینه که حد و مرز هایی که من مشخص کردم از حد و مرز حفاظت بکن، پاسداری بکن. اون محدودی که خدا مشخص کرده، از اون محدوده فراتر نرو، تجاوز نکن. اینجا خداوند این در واقع این اشاره‌ای است به این نکته، اگر کسی حلال خدا را حرام بکنه، از حد و مرز خداوند پا را فراتر گذاشته. و خداوند این انسان را هرگز دوست نخواهد داشت. ادامه می‌فرماید: و کلو و بخوروا ای بندگان من و کلو مما رزقکم الله. بخورید ازام چه که خداوند به شما رزق داده رزق بنده ها رو کی میده؟ خدا میده نمیده بنده میده رزق انسان رو اگر میدن بنده میده بیشاره خیلی از بنده ها دیری تا حالا مرده بودن چرا؟ تو کافیه یک بار ما یه باید برادر مسلمانم استقاکی پیدا بکنم باش ماشیل پیدا بکنم کافیه دیگه دستور میدم همه جا آقا یارانیشو قد بکن آقا فلانشو قد بکن تا بالاخره بیاد به دست پای من بیفته خودش رو بالاخره جلوی من بیاندازه تا من رحمم بیاد و به نوعی در حقش ارفاق بکنم مقرریش مقرریشو بگم وصله بشه و حقوقش یا همو یارانت چه که دیگه هست دشت بدن قربان خدا بگردم خدا چه ذات عظیم و بزرگیه که ریس رو در دست خودش نگه داشت چون میدانست اگر ریس دست بنده من بیفته نسبت به دیگران چیکار میکنه ظلم میکنه یک روزی کتابی مطالعه میکردم غالبا داستان بهلول بود یا هر کسی دیگه یکی از این حکما و ارقای قدیم میگه که امیرش و اربابش گفت که ای غلام ای برده بیا که من روزی تو رو من بند و بست بکنم گوش میدید اینا یک کاتای پرمخزیه وقتی خودم یک کاتا رو میخوانم خیلی به بست میان میگه که به اربا، عربا به زیر دستش و اون غلام و بردش گفت که بیا از فردا من بند و تو رو من بکنم گفت ارباب گفت بله. گفت من دلم میخواست بیام پیشه ولی چند چیز و چند علت باعث میشه من حرف تو رو قبول نکنم مذارت میخوام با عدد صحبت میکن با عربابش گفت عرباب مذارت میخوام حرفت خیلی خوبه من نیومدم پیش تو تا تو بندبست رزق من غذای من خوراک من پوشاک من اسباب زندگی من رو فراهم بکنی اما چند علت داره و چند تا عیب هست در وجود که من نمی توانم اینها مانه می من بیام پیش تو گفت یعنی چی؟ کدوم علت ها؟ گفت که یکی از علت ها اینه که توی ارباب نمیدانی که من چقدر غذا می کنم تا به من بدیم یک نمیدانم چقدر تو نمیدانی. توی ارباب نمی من چقدر شکمم غذا می خواد مهدم چقدر گنجایزشه تا تو به من همو اندازه داخل ظرفی ای چیزی غذا بریزی بدی اینقدر بخور ولی خدایی من دارم که به ای که من سیر بشم خدا به من غذا میده تو که نمیدانی ولی خدا که میدانه چه اندازه غذا میخورم تو نمیدانی خدا میدانه کی من نیاز به غذا پیدا میکنم تو هم نمیدانی ولی خدا میدانه و مهم این نکته اصلیش اینه که هر زمان تو از من راضی باشی منو سر سفره میذاری میگه بیا بخور ولی خدا نکنه اون روزو از دست من عصبانی میشی فوراً دستور میده نگهبان که جلوس بگه اجازه نذاره بیاد سر سفره بشینه ولی من همچین خدایی دارم حتا اطاعتش میکنم به من رز میده هم اگر گول شیطان بخورم نافرمانی شب بکنم خدا ریس منو نمیبنده خیلی پرمغز این جمله خدایی دارم اگر تاعتش هم بکنم به من نون میده رزق میده اگر قریب شیطان هم بکنم نافرمانیش هم بکنم خدا در غزقشو بر من نمی برده بعده برادر عزیز من اینه پس رزق دست او بالاییه دست خداست دست هیچ کسی نیست به خدا قسم مسلمان این باور رو در دلمون نهادینه بکنیم رزق از جانب اللهه کم و زیادش فرق نداره اشکال نداره امروز اگر سهمیه من فقط یک نون خشک باشه اگر همین نون خشک به من برسه من خوشبزار خدا باشم چون خداوند تشخیص میده احوال بندش رو اگر به من برنج گوش بده نمیدونم فردا قضای پر زرق و برق رو بده چه بسا من متمرد و سرکش بشم چه بسا دست به رازدانی و دزدی و قدر و غارت بزنم شکم که سیر بشه بعد از امکانات ظرفیت ندارن زرفیت ندارن زرفیت رز ندارن زرفیت مال ندارن زرفیت مقام و پست ندارن بعضی از انسان ها به خاطر همینه یکی از آداب دعاییه انسان همیشه که دعا میکنه بگه خدایا ظرفیت این نعمت رو در وجود من داخل بگردن این ظرفیت رو به من بده خدا از قراره به من مال بدی زرفیتش اول به من بده تا من بدونم وقتی مال دار شدم دست به نافرمانی تو خدا نزنم اگر قرار چه نعمت به من دادی همسایه بغل دستی من که گرسنه بی وزنه خانواده زندانی فراموشش نکنم. غذا پر سفره پر از غذا هست. می نصف غذا اضافه سر اومده چفه می تو پلاستیکی زبال شهرداری ببره. اما بیگه گوشی منو تو شب وسط شب یک بیرزن یک خانواده ضعیفی سر بر بالین بذاره گرسنه معدش خالی باشه پس صرفیت میخوادیم این نعمت هر نعمت دیگر. این برادر عزیز من این در رابطه با ادامه اینا و كلوا مما رزقكم الله لكم ما ما مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله خدا میگه عثمان به ترتیب بندگان من واتقوا الله الذي انتم به مؤمنون به ترتیب از اون خدایی که من باشم و شما به من خدا ایمان دارید من سؤال میکنم همه ما و شما اینجا در این مزیر سادر استیم همه من و شما به خدا ایمان داریم یا نداریم؟ <تصفيق> پس این نکته خطاب من, من و توی واتقالله به ترسید ای بندگان من از من خدا کدام خدا؟ آن خدایی که شما به او ایمان دارید این معنی آیه اول پیامبر اکرم در یک حدیثی میفرماز صلی الله علیه سلم الحلال و بینون والحرام و بینون خداوند هم حلال رو واضح و آشکار کرده هم حرام واضح و آشکاره یعنی چیز پوشیدهی وجود نداره اما پیامبر اکرم می بین اینها یک چیزهای مشتبی هست تشابه دارند. انسان نمیدونه اینی که الان من مصرف بکنم حلاله یا حرامه یعنی مشتبه برایش واضح نیست آشکار نیست دین آمده اشکار کرده این وسط این چیزهای مشتبه رو ما روشن کرده که ما دیگه در ادامه مسیر زندگیمون به مشکل بر نخوریم اما یک توصیه پیامبر پرموده وقتی شما با چیزهای مشتبه مواجه شدید به خاطر اینکه آبرویتون مالتون ضایع نشه آبرویتون نره شما از این چیزهای مشتبه هم کناره گیری بکنید نری دور و دور بره اونها دور بره اونها قدم نزنید از اینها دوری بکنید تا هم مالتون محبوظ بمونه، هم آبرو و ارزتون. پیانبر اکنین فرمایت الحلال و والحرام و الحرام و بین و بین ذالک مشتبه ها. بین حلال و حرام یه چیزهای اصلا مشتبهند پیامبر فرماید: لا یدری کثیر من الناس، بسیاری از مردم این چیزها رو تشخیص نمیدن این کاری که من میخواام بکنم این تجارتی که می خواهم انجام بدم آیا حلال یا حرامه بیایان برکنم فرماید که لا یا درکتتی رو منن ناز بسیاری از مردم نمیدانن عمل الحلال، آیا این کار حلاله یا عمل حرام یا اینکه این کار حرامه پس چیکار بکنه ادامه این فرماید سمن ترک ها. هر کس این چیزهای مشتبه رو ترک بکنه، اینها رو غیل بکنه، دور بر اینا ها نره، استبر احل دینی هی و اربی هی. پیامبر اکرم اکرامی هم دینش رو حفاظت کرده، هم آبرویش رو، بعضی از وقتا انسان نمیدونه این کاری انجام بدم درست یا نادرست، میره انجامش میده بعد کاشه عمل بنیام عمل عمل بدی میده چه بسا کسی ببینتش یا یه جایی این عمل مرتکب شده در میان مردم علنی میشه که فلانی فلان کار کرده طرف هم نمیدونسته بعد باعث بشه هم دینش zarar بکنه هم آبروش بره مردم همینورو کار بکنن به دیده تحویلش نگاه می‌کنن فلانی رفته فلان کار انجام داده پس پیام بر اکرم شما در این که معلوم نیست این کار حلال یا حرام دوری بکنید برید کنار دور برش نه تا هم دینتون محفوظ بمونه، هم آورویتون فقط سلامت، به تحقیقی انسان در سلامت مان و من واقع شیع منها یوشک و انی واقع الحرام کسی که به انها دست بزنه شاید شاید این انسان در حرام واقع بشه کما انمن یرعا حول الحما پیانبر یک مثال خوبی میزنه میگه بانند یک چیفانی کشیدیم ماننی یک چوپانی گله گوزفندی داره اینها رو برده به چراغا اما محدوده چراغا مشخصه که نباید از این محدوده بره اون طرفتر اون چراغای بعدی مال کسی دیگه یه اما این چوپان اگر زرنگ نباشه مراقب نباشه گوسفند چه بسا اینجا از این علف این مرتر بچره بعد حواظش نباشه بره هم مرتر هم هم بچره از حد و مرد تجاوز میکنه پیامبر اکرم فرمود اگر کسی حلال و حرام رو را رعایت نکنه مانند این چوپانه مراقب نیست گوسند میره اون طرف تر اما باید چوپان شیشدنگ आवाजش جنب باشه مراقب گوسند باشه که از اون محدوده فراتر نره این مفهوم کلی این حدیث اولی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام شما چکار کردن بیان کردن اما حدیث بعدی وقت محدوده پیامبر اکرم فرمود ما احل الله في كتابه فهو حلال ای مردم هر را که خداوند در قرآن دستور داده حلاله او تا قیامت برای شما حلاله کسی حق نداری اینو حرامش بکنه مثال میزنم بعد برای شما که بعضی ها چیزهای حلال رو حرام میکنن چیزهای حرام رو حلال میکنن و خداوند این گروه از این انسان ها را به عذاب دردناک تعدید کرده پیانبر اگرمی فرماید ما حل الله فی کتابهی با هو حلال هرچی را که خداوند در کتابش کتاب خداوند چیه؟ آه آه آه چیه کتاب خداوند؟ قرآن تورات و انجیل که زبور و نمیدونم کتاب های دیگه نید دی. کتاب خداوند دینی که خدا پسندیده اسلام و کتاب خداوند قرآنه پس بیانبر می فرماد هرچی را که خداوند در قرآن برای شما حلال کرده فهو حلال او تا قیامت و ما حرم فهو حرام هرچی را که خداوند در قرآن حرام کرده قیامت حرامه و ما سکت عنه فهو عفون فقبلو من الله آفیته فإن الله لم يكن لینسی الشيئان هرچی را که خداوند هم حرف نذار در رابطه با او شما دیگه بحث هم نکنید در رابطه با او حالا من مثالش رو میذارم شما میگن یک روز حضرت سلمان فارسی رو روایت میکنه گوش بدید حضرت سلمان میگه که ما نشسته بودیم در مدرسه پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در محضرش گروه آمد سوال کرده پیامبر گفت بله گفت چند چیز ما سوال میکنیم اینا حلال یا حرام پیامبر اکرم فرمود چیه سوال کردن آیا روغن حلال یا حرامه پنیر همین پنیری که ما شما میخوریم پنیر حلال یا حرامه شبان الله پوست خر وحشی حلال یا حرامه شبان الله پیانبر اکرم به سراحت جواب ندار پیانبر اکرم فرمود چرا شما به اون چی که خدا حلال کرده شما بحث میکنیم مثل بنی اسرائیل مثل اقوام دیگر بابا خداوند وقتی چیزی رو حلال کرده دیگه نباید در رابطه با اون بحث میشه چرا حلاله چرا حرامه؟ بزرگان علما می فرمان هر چی که حلاله چند تا چیز در او هست یا خیر دنیای یا خیر آخرت یا هر دوتا منفعت در مال منفعت در آبروی منفعت در جسم انسانه این چهار چیز رو علما گفتن و هر چی که حرامه چهار تا عکس اینها هم برو شادفه. مثال بزنم زنم خداوند از دور داده که ازدواج بکنید تا از ازدواج پاکی و افتت نصیب شما بشه شما بیا به من بگو کسی که ازدواج کرده و بر به سلا چارچوب ازدواج این انسان پاییبند بوده خدای نخواسته بعد از ازدواج مرتکب عمل بعد نشده مرتکب زنا و فحشا و لواط نشده شما این انسان رو بیا برای من مثال بزن بگوی انسان الان مبتلا به مریضی عید اگر شما یه نمونه آوردید ولی انسان‌ها هستند که از چارچوب مقررات خدا پار رو فراتر گذاشتن امروز مریضی های مختلفی در دنیا مانند ایز و فلان و فلان امروز در دنیا نمود پیدا کرده. خب پس اون چیزی که خدا حلال کرده هرگز انسان با مشکل مواجه نمیشه هرگز انسانی که پایبند مسائل اخلاقی باشه به عمل بد و گرفتار دام ایز و فلان و فلان نمی‌افته. اما اگر کسی فراتر از دستور خدا از حدود خدا پار و فراتر بگذاره قطعا با این چالش ها مواجهه میشه پس حلال خدا این چند تا پایده داره حرام خدا چند تا داره شما بیا به من بگو کسی از خوردن مشروبات الکلی به جای رسیده باشه شما بیا برا من چار بده کسی از کشیدن سیگار و توترون و کلیان و اینها به جای رسیده شما مثال بدنید غیر از این که از کشیدن سیگار و قلیان و کتر و شراب و اینها جز این که ضرر به مالش زده ضرر به جسمش زده ضرر به آبروش زده چیز دیگه اگر آید شده شما بیا ببرم مثال بزنم آیا چینی چیزی شده؟ نه پس حلال خدا سراسر خیره و حرام خدا سراسر شر برادر عزیز من پیامبر اکرم میگه حضرت سلمان میگه پیامبر به این گروه گفت چرا اون چیزایی که خدا حلال کرده شما بحث میکنی پنیر که خوردنیه چرا سوال میکنی روغن که چیز خوردنیه چرا شما سوال میکنی پوست بعضی از حیوانات حالا بعد از این که دباغي میشه بالاخره نمی‌دونم گرمش میکنم فهم در بعضی از چیزها استفاده میشه خب چرا ما میخوام این حلال خدا رو برادر عزیز من چکار بکنیم حرامش قرار بدیم اینو حضرت سلمان فارسی در یکی از روایات این برای ما بیان کردیم من خدمت شما عرض کردم این اولی نکته نکته دوم در باب فصل اول که عرب گنسان عزیزانی تازه به جمع ما ملحق شدن ما در رابطه با حلال و حرام صحبت میکنیم که این حرام و حرام چند تا فصل داره یک از هاست یازده تا شبه داره اولینشو من ارز کردم دومینشو گوش بده هیچ کسی حق ندارد حلالی که خدا حلال ساخته حرام بکنه و حرامی که خدا حرام قرار داده اونو حلال بکنه یعنی این حق منحضرن مال خود خداونده هیچ کسی حتی از پیامبران حق نداره حلال خدا رو بیار حرام بکنه حتی پیامبران او داستان معروف رو شما شنیدید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خورده بودن از واج متهرات یه قیلقالی یه صحبتی کردن گفتن پیامبر اکرم صلی الله علیه و دهان شما یه مقدار بد میار میاد منظور شنید بود بالاخره یه چیز زنانه بود خیلی نمیخوام او بپردازم پیامبر اکرم فرمود عجب پس اینی که من خوردم باعث شده باعث بدبوئی دهن شده دیگه من نمیخورمش خداوند فوراً چهلیل رو نازل کرد یا ای نبی، ليه متحرم ما احلله الله لك؟ حب تقي ای پیامبر چرا اون چیزی که من خدا حلال کردم تو حرامش میکنی آیا دنبال این هستی که زنانت رو راضی بکنی یا دنبال این باش که من خدا رو راضی بکنی؟ ببین خداوند با پیامبرش شارف نداره. اونم کدوم پیامبر؟ رحمت اللعالمین، سید الاولین و اون پیامبری که خداوند سید تمام انبیاش قرار داده خداوند به پیانبرش میگه پیامبر چرا به خاطر یه حرف قیل خال زنات؟ یه چیزی که من حرام حلالش کردم اصل باشه تو حرامش میکنی؟ تو بگی من نمیخورم این پاچه اجازه شبهان الله پس این مسئله اینقدر مهمه حق حلال ساختن اشیا و حرام ساختنشون مختصد کهیه؟ نشیدم مختصد کهیه؟ الله. الله خداست خدا بهت تشویق میده چه برای ما حلال باشه خدا تشویق میده چه برای ما حرام باشه پس این حق خداوند کسی حق نداره به حق خداوند تجاوز بکنه مثالش رو برای شما بدام دین اسلام این اختیار رو براش خدا فقط قائل شده برای هیچ کسی دیگر. هیچ کشیشی و هیچ راهیبی هیچ مullah و هیچ شیخی هیچ منصب و هیچ مخامی هیچ پادشاه و هیچ امیری حق نداره به اون چارچوبی که خدا مشخص کرده از اون چارچوب پا را فرانتر بگذاره حلال خدا رو حلال حرام بکنه و حرام خدا رو حلال بکنه حق نداره صاحب منصب هم باشه تاکی هم باشه اون قدرتش یه قدرت خیلی ضعیفه در مقابل خداوند بیا ببین قران مجید یهود و نصارا رو چجوری توبیخ میکنه به خاطر همین کاراشون مله های یهود مله های نصارا کشیش و راهبا چیکار میکردن می آمدن حلال خدا را حرام می‌کردن برای مردم و چیزهای حرام را حلال می‌کردن سبحان الله همین که شیشا همین راهبانا راهبان سبحان الله خداوند در سوره توبه می فرماید همین نکته رو اشاره می‌کنه و در سوره قبلی عملهم شرکا و شرعوا لهم من الدين ما لم به الله خداوند میگه آیا این کافران از کجا این حق رو داشتن که آمدن حلال خدا رو حرام کردن و حرام خدا رو حلال کردن اینها از کجا این قدرت رو پیدا کردن آیا از جانب خدا اینا اجازه گرفتن خدا میگه من هم همچین اجازه به کسی ندادم اینا بدون اجازه و خود این کارها رو کردن یا ادامین فرماد اتخذو احبارهم و رهبانهم شبهان الله خداوند میفرماد قوم بدبخت ی گرفتن مله های خودشون رو کشیش ها و راهبان خودشون رو ارباب من دون الله اینها اینها را این مله های خودشون را ارباب خودشان صاحب حکم صاحب فرمان صاحب دستور گرفتن من دون الله غیر از خدا گفتن هرچی اینها بگن ما قبول میکنیم هر چی ما بگه هرچی نمیدونم کشیش ما بگه هرچی نمی نمیدونم پدر روحانی بگه چرا بعضی رفته من به شما میگم؟ عزیزان من، سوالی که میکنید، آدام سوال کردن، هم یاد بگیرید، سوال بکنید، اینطور سوال بکنید که بگید خدا و رسول در رابطه با این مسئله چی میگن؟ اینجوری سوال نکنید که فلانی خطاب میکنن من ملا رو، فلانی نظر شما در رابطه با فلان مسئله چیه؟ من چی هستم؟ نظر من کجا ملاکه سوال باز اینطوری باشه؟ فلانی خدا و رسول در رابطه با این مسئله چه دستور میدن؟ این درسته؟ اینجا هم یهود و نصارا می آمدن پیش ملاهاشون پیش او کشیشا شیش ها روحانی از اونها سوال اینا سوال میکردن اینها هم خود سر دارا اینها تجویز می کردن خداون می فرماید اینها اتخذو احبارهم و روحبانهم عرباب من دون الله و المسیح حبد مریم حتی حضرت ایسا را هم از خدا بالاتر می دانستن الله ایسا میگه روز خی... خدا می روز قیامت ما حضرت را هم حاضر را این مسیحیارا هم حاضر می کنیم. خدا میگه من از ایشون سوال می کنم hey, ای عیسی تو به اینها گفتی که تو را پسر خدا بگن و مادر تو را العیاذ زن خدا بگن بیبی بی مریم را آیا تو به اینها گفتی تو گفتی اینها تو را عبادت بکنن خدا را ویل بکنن عیسی جواب میده میگه خدایا عیسی کجا جرئت داره در مقابل ذات عظیم شما چنین انتای بکنه من هرگز این چیزی نگفتم اینها از خود سر از هوا و حبست شیطانی این کار رو کردن اگر من گفته باشم خدا تو که میدانی. ولی من هرگز همچین هربی نزدم اینجا خداوند می فرماید اینها علمایشون رو که شیشا و راهبانشون رو غیر از خداوند برای خودشان همه کاره گرفتن حتی مسیح ابن مریم را و ما اومرو الا اینها دستور داده نشده بودن مگر خدا یک را بپرستند چرا رفتن دنبال هوا و هوس الله اکبر لا اله الا هو سبحانه اما یشرکو سبحان الله خدا میگه من یکتا هستم هیچ شریکی ندارم نه عیسی با من شریکه نه مریم شریکه نه نمیدونم فلان شریکه لات و هبل و عزا و فلان هیچ کسی با من شریک نیست من یکتا و پاک هستم از آدم که اینها به من شرک می ورزن عدی بن حاتم یک صحابی از رسول الله صلی الله علیه و وقتی این آیه رو شنید گویا خدا این کشیش ها و این روحانی ها و این پدرهای روحانی اینها به عنوان خدا نبودن اینها نمیگفتن ما را عبادت بکنید پیامبر اکرم فرمودن بله اینها نگفتند نگفتن مستقیم جلوشان بیافتند. اما همین که دستورها اینها را قبول میکردن یکی از اون دستورها حلال خدا را حرام میکردن و حرام را حلال میکردن میگفت این هم در شرک داخله این هم یک نوعی از انواع مختلف شرک و خداون اینجا به خاطر این اینها را تحدید میکنه شبان الله. پیامبر اکرم توضیح میده برای این صحابه جلیل قدر که علی ابن حاته حاتم نگران نماش منظور خداوند اینه که چرا حرف من خدا رو زمین زدن حرف مخلوق من رو قبول کردن حالا شما رو بیا به خدا ببین امروز در دنیا به همین مقدار اکتفاق میکنم وقت نماز رسیم نمیخواب بیشتر ادامه بدم ادامه سن انشاءالله در جلسه بعد و جلسات بعدی میخوام به تمام شعبش بپردازم تا ما بفهمیم و بدانیم که متاسفانه زندگی ما چقدر آلوده با متاسفانه محرمات شده خود هم خبر نداریم بعضی وقتا میان سوال میکنن فلانی فراکار چجوریه ما فلان معامله رو کردیم چجوریه خب قبلش نمیدونست اگر نمیدونست بالاخره با استغفار و توبه ای الله قبول میکنه و بعد ادامه وقتی سوال کرد و به او خبر دادن اطلاع شد دیگه دست میکشه اما خیلی هستن رخیباشو میگی میگه بابا الا بلا به گردن فلان ملا فلان ملا به ما گفته ما میگیم بابا خدا به سراحت از بابت روا من کرده گفته بابا روا چیز بسیار بدیه نجز زندگی شما رو تباه میکنه شما یک نفر پیدا بکن یک نفر نمیگم در نفر یک نفر پیدا بکن بره روا برداره و این انسان به تعبیر بزیچی من شما شلوارش نو شده باشه لباکش رو نو کنه اگر شما یک نفر برای من آبودید آمنه و سلمنا. من من تسلیمم ولی به گوامی خود همین حال که رفتن وام گرفتن وام روا و نزول گرفتن خودش آمده طرف پیش خود من میگه فلانی حاضرم همون اصل مالم رو بدم اصلا حاضرم خونه و فرش زیرپام رو بدم اما فلان جا دست از من بکشه، ولکن من بشه، من بگم این برابر با همون وامی که من از تو گرفتم خودم را آزاد بکنن، هنوز می‌گونم نیست. خب چرا وقتی چیزی رو که خدا حرام کرده، به صرف این که وقتی باهاش حرف می‌زنی میگه فلان مولوی راست وام گرفته؟ آیا دلیل ما فلان مولوی؟ دلیل ما فلان حاجی و درویش و صوفی و فلانه؟ یا دلیل ما قرآن و سنت؟ شما رو خدا آیا قرآن و صنب باید برای ما باشه؟ دستور خدا پیانبر برای ما, ما مهم باشه؟ یا عمل کرده منفی و نادرست من ملان؟ چالا ما جناب ملان منبرنشینم باشه؟ رو منبرم من همه که باشم؟ ولی از خدا فنا میبرم تا الان که نزد شما نشستم خداون توفیق ربان نداده و امیدوارم تا زنده هستیم همه ما خدا از این چیز بد و نجس همه من شما رو بازر بکنه ولی شما رو به خدا نگاه نکنه دمر کرده افراد رو ببینید خداور از اون چی میگه دستور خدا چیه اینک اکه متاسفانه بعضی یا مراحات نمی کنن میافتند درش بعد در آمدن از این من جناب دیگه واقعی ناشون دیگه نمیتونه در بیاد گرفتار شده غرف شده چه بسا چه بسا در غم و غصه های همین داستان ها تکه هم بکنه میبینه دیگه وشونه دیگه مگه غم و غصه باعث تکسه است دیگه وقتی تکه کنه بره به بارگاه خدا میخواد خدا را چی جواب بده خدا رو چی جواب بده خدا میگه این همه پیامبر فرستادن قران فرستادن محمد رسول الله رو فرستادن صحابه جلیل القدر آمدن در تمام دنیا به شما گفتن چرا دست نکشیدی میخوایم خدا را چی جواب بدیم در روز شما رو به خدا یک بار هم که شدید تحصیل نظر در زندگیمون بکنیم کنیم.حلال اون رو تشوییل بودیم هرانمون از کجا میاد؟ از چههایی میاد؟ بعد زم پس بیاد از هر،, از هر کجا میخواد بیاد بیاد. مییل نتیجه چی میشه. آخرش اینه که درها رو باز کنون از هر کجا بیاد نگاه هم نکنیم از کجا آمده؟ نهاللتش بچه من و تو که از همین ر بهخره جون گرفته و بزرگ شده میشه معطاد جامعره. طرف هست؟ نذول بچه ها تمام mortad شده طرف از نذول میده تمام خدا نکنه خدا نکنه ناموزش داره در بازار به حراج میره خب کدوم غیرت مسلمانی رو قبول می‌کنه شما رو به خدا قبول می‌کنی شما ما چرمای با غیرتی هستیم ما ناموز ناموس‌بردی هستیم ما حاضر نیستیم چادر زن ما رو کسی چپ نگاه بکنه ولی این رو مراقب باشید اگر اعمال منو تو درست نباشه اینها به این سمت رو داده میشه نتیجه که میشه برادر از زیده من راه زن میشه بچه من اتا دوت میشه نمیدونم فالان میشه خب اینا ها نتیجه این میشه اعمال ما هست که متاسفانه نصفت و اونها ما کم توجه بودیم امیدوارم خداول از آنچه که بیان شد راضی شده باشه من این هر بار رسدم به خاطر این که الله راضی بشه